بعد از تصادف موقعی که توی اتاق درمانگاه می رابا بودم وقت داشتم با خودم فکر کنم. اول یاد سگی افتادم که وقتی بچه بودم یک روز بعد از ظهر زیر ماشین له شد. بعد ماجرایی که به همان دوران برمیگشت کم کم به ذهنم آمد. شاید آن موقع از فکر کردن با آن تفره رفته بودم. اما بعضی وقتها که بوی اتر به می میرسید. این خاطره برایم مجسم می شد. همان بوی سیاه و سفیدی که آدم را تا نقطه نامتعادل و ناپایدار بین زندگی و مرگ می کشاند. احساس تراوت و نفس کشیدن در هوای آزاد و گاهی حس سنگینی کفن شب قبل در بیمارستان مرکزی وقتی روی صورتم پوزه بند گذاشتن تا خوابم ببرد یادم اومد این اتفاق قبلا برایم پیش آمده بود همان شب، همان تصادف، همان بوی اتر وقت تعطیلی مدرسه ها بود حیات مدرسه مشرف بر خیابان سراشیبی بود که دو طرفش درخت ها و خانه ها صف کشیده بودند نمیدانستم ویلا بودند یا خانه های یا امارت شبیه خانه های حومیشه دوران کودکیم آنقدر انقدر در جاهای مختلف زندگی کرده بودم که در نهایت با هم غاتیشان می کردم که از این خیابان در ذهنم داشتم شاید با خیابان شیبداری در جوان جوزا یا یکی از خیابانهای بیاریتز ترکیب شده بود همان دوران مدتی در این دو محل زندگی کرده بودم. گمانم آن سگ توی خیابان دکتر کورزن در جوان جوزا زیر ماشین رفته بود. نزدیک غروب از مدرسه بیرون آمدم. فکر می کنم زمستان بود. هوا تاریک شده بود. توی پیاده رو منتظر بودم کسی بیاید دنبالم. طولی نکشید که هیچ کس دورو برم نماند. در مدرسه بسته شد پشت شیشه ها دیگر چراغی روشن نبود نمیدانستم برای رسیدن به خانه باید از کدام راه بروم میخواستم از خیابان رد شوم. تازه پیاده رو را پشت سر گذاشته بودم که ناگهان بانتی درماز کرد و به من زد غوزه که زخمی شد توی اتاقه که برزنتی عقب درازم کردند یکی از آن دو مرد کنارم ماند وقتی ماشین روشن شد زنی بالا آمد میشناختمش با او همخانه بودم قیافهاش یادم هست جوان بود حدود بیست و پنج ساله با موهای بور یا بلوطی روشن روی گونهاش جای زخمی بود روی سرم خم شد و دستم را گرفت نفس نفس میزد انگار دویده بود به مرد کناری توضیح میداد که به خاطر خرابی ماشین دیر کرده میگفت از پاریس میام بانیت جلوی های باقی ایستاد یکی از مردها بغلم کرد و از باغ گذشتیم زن هنوز دستم را گرفته بود وارد خانه شدیم روی تختی دراز کشیدم توی اتاقی با دیوارهای سفید دوخاھر روحانی و فشرده فشرده در مغنه های سفید روی سرم خم شدند روی بینی همان بند سیاه بیمارستان را گذاشتند قبل از خوابیدن بوی سفید و سیاه اتر را حس کردم